اگر کس طلاق رجعی داد شرط این است که قبل از اتمام عادت این عده خانوم باید رجوع کند یعنی طاق از این خانوم سه بار ماذور بشه با رجوع کده. اگر رجوع نکرد و خانوم سه بار ماذور شود خانوم رفت. حالا طلاق طلاق بائن میشه. باید بعد با از اون با اجازه باشه. حالا قبل از اون احتمال شما است خانوم بخواهد نه خاط رجوع کرد نکاح باقی بعد از اداد اگر نکردی احتمال خانمی اگر نخواست نمیتونی ازدواج کنی بعد خانم میتوند جدیه زواج شروع کنه.